خانه زخلبینین ها همانطور که ورچانی لحظه پیش گفته بود زخلبینین ها خانواده بسیار مناسب و شایستهی بودند آقای زخل بینین کارمندی مهم و بسیار مشهور بود آنچرا که پاول پاولویچ از درآمد آنها گفته بود واقعا درست بود خوب زندگی می‌کنند، اما اگر الان پدر بمیرد برای آنها هیچ باقی نمی زاخر بنین پیر از ولچنینوف دوستانه و با مهربانی پذیرایی کرد. حریف سابقش حالا دوست او شده بود. اولین حرفش را که با مهربانی و وقار ادا کرد این بود: به شما تبریک میگویم. اینطور خیلی بهتر است. من خودم اصرار داشتم که به طرزی دوستانه با هم کنار بیایید. و پیوتر کارلوویچ وکیل ولچنینوف در این کار هم وزن خودش به طلا می‌ارزد. حالا چه خوب شما بی سر و صدا، بی اطلاف وقت، بی مشاجره به شهست هزار روبر می رسید. صرف نظر از اینکه ممکن بود دعوا سه سال طول بکشد. ورچانینو فوراً به خانم زاخلیبینین که زنی مسن و تنومند بود و صورتی معمولی و خسته داشت معرفی شد. دخترهای جوان یکی پس از دیگری یا جفت جفت ظاهر شدند. اما چقدر زیبا بودند. کم کم ده شدند. ولچانینوف موفق نشد همه را بشمارد. بعضی داخل میشدند و بعضی خارج میشدند. اما در بین آنها دوستان و همسایگان هم بودند. ویلای ها که منزلی چوبی بود، سبکی ناشناس و عجیب داشت و با زمیمه های مختلفش از باغ وسیعی احاطه شده بود و در هر طرفش نیز سه یا چهار ویلای دیگر واقع بود. بنابر این باغ مشترک بود. و این موضوع طبیعتا سبب میشد که دخترهای جوان به همسایگانشان نزدیک شوند. ورچانینوف از اولین کلمات فهمید که اینجا انتظارش را میکشیدهاند. و دیدار یکی از دوستان پاول پاولویچ که اشتیاق آشنایی با این فامیل را داشته است رسما اعلام شده بود. نظر تیزبینش که در این مسائل خبرگی داشت، فوراً چیز مخصوصی را تشخیص داد. از پذیرایی گرمگیرای پدر و مادر از بعضی حالتهای دخترهای جوان، از آرایش آنها، هرچند که روز جشن بود، ولچانینوف حدس سد که پاول پاولویچ زرنگی کرده و شاید به آنها فهمانیده است که ولچانینوف مرد ثروتمند و مجردی است که از وضع خود کسل شده است و به آلی ترین محافل هم بستگی دارد و بعید هم به نظر نمیرسد که روزی مصمم شود تغییر زندگی بدهد و زن بگیرد. از همه مهمتر اینکه او تازگی به ارسی هم رسیده است. بزرگترین دختر خانم های زخلبینی کاترینا فداسیفنا که 24 سال داشت و پاول پاولویچ از او مانند موجود زیبایی صحبت کرده بود به نظر می‌آمد درست برای این کار در نظر گرفته شده است. او با آرایش مخصوص خود و با طرز بی سابقه ای که موهای زیبایش را مرتب کرده بود خود را از خواهرهایش ممتاز ساخته بود. خواهرهایش، و دخترهای جوان دیگر حالتی داشتند که انگار میدانن ورچانینوف برای کاتیا اینجا آمده است تا او را با دقت نگاه ها و حتی بعضی گفتارهایشان که در آن روز بی اختیار بر زبانشان جاری میشد، حدس او را اثبات کردند. کاترینا فداسیونا، دختری جوان و بزرگ و بور و تنومند بود و صورتش فوق‌العاده دلپذیر بود. ولچانینوف که با لذت به او نگاه می‌کرد، بی‌اراده فکر کرد راستی عجیب است که کنون در خانه مانده است درست است که جهیزی ندارد و به زودی پشمرده خواهد شد اما در این لحظه باید خاستگارهای زیادی داشته باشد خواهرهای دیگر هم زیاد بد نبودند و در بین دوستان کوچکشان چند صورت ملوس دلفریب و حتی زیبا وجود داشت این مطلب داشت او را کم کم مشغول می کرد وانگهی هنگام وارد شدن به اینجا این افکار را هم در سر داشت نادیجا فداسیفنا ششمین دختر که مدرسه میرفت و نامزد فرضی پاول پاولویچ بود رو نشان نمیداد ولچانینف با بیهصلگی منتظرش بود این موضوع را متعجب میکرد و در باطن لبخند میزد بالاخره او هم همراه با دختر جوان پرنشات و جذابی پدیدار شد ماریا نیكیتیشنا دخترکی گندمگون بود و صورتی دلپسند داشت ورود آنها بیتأثیر نبود و ناگهان به نظر آمد که پاول پاولویچ شدیداً ترسیده است. این ماریا نیکیتشنا تقریباً بیست و سه سال داشت و قیافش شوخ بود و باهوش به نظر می رسید. در یکی از خانواده های همسایه پرستار بود و دوست آنها حساب می شد. بود که ها او را مثل یکی از اعضای خانواده تلقی می کردند و دخترهای جوان بسیار دوستش می داشتند. و واضح بود که به خصوص حالا نادیا نمی از او چش بپوشد. فوراً ورچانینوف مشاهده کرد که همه خواهرها و دوستانشان بر ضد پاول پاولویچ متحد شدهاند و یک دقیقه بعد از ورود نادیا، ورچانینوف درک کرد که او هم از پاول پاولویچ متنفر است. نیز فهمید که پاول پاولویچ مطلقاً از این موضوع چیزی درک نکرده است یا نمی خواهد درک کند. نادیا و چرا زیباتر از همه بود؟ کوچک و گندمگون بود و حالتی بی‌اهمیت و ترش داشت، و همچون آدم بی‌دین جسور به نظر می آمد. زرنگیش شیطن چشمانش آتشین و لبخندش دلفری بود هرچند که اقرب شرارت از آن خوانده دهان و دندانی فوقالعاده داشت و باری کندام و متناسب بود در قیافه سوزانش که هنوز تقریباً بچگانه بود اکنون افکار نو نفوزی یافته بود هر یک از حرکاتش، هر یک از گفته 15 پانزه سال داشتنش را آشکار میساخت. خیلی بعد، ولچانینا فهمید که پاول پاولویچ برای اولین بار نادیا را با کیف مشمعی که به زیر بغل داشته دیده بوده است، اما اکنون دیگر آن را به زیر بغل نداشت. دستبند موفقیتی را که انتظار میرفت به دست نیاورد و حتی تأثیر ناگوار بخشید. پاول پاولویچ به محض اینکه دید نامزدش وارد می شود با تبسم به او نزدیک شد. این هدیه را به خاطر آواز رقتانگیز خوشی که نادی فدوسیونا در آخرین ملاقاتشان با پیانو خوانده بود و او لذت مطبوعی از آن برده بود تقدیم کرد جویده جویده و نامفهوم حرف زد، نتوانست جمله را تمام کند و به آشفتگی بسیار دستش را دراز کرد و سعی کرد جعبه جواهر را در دست نادیا که از خشم و شرم قرمز شده بود بگذارد. اما او از گرفتنش امتناع ورزید و دستهایش را به عقب میبرد. او به مادر خود که از صورتش تشویش بزرگی خند میشد با جسارت و با صدایی بلند گفت: من نمیخوام آن را بگیرم مامان پدر با لحنی آرام و جدی گفت آن را بگیر و تشکر کن نادیا با لحنی که کاملا انکار از آن فهمیده میشد آهسته گفت لازم نیست لازم نیست نادیا نمیتوانست توانست کار دیگری بکند جعبه جواهر را گرفت چشمانش را به زی و مراسم احترام را به جا ورد. همانطور که در این گونه مواقع همه دخترهای کوچک انجام می دهند. یعنی ناگهان در هم فرو می روند و فوراً دوباره بلند می‌شوند. مثل اینکه فنری آنها را به حرکت درآورده است. یکی از خواهرها برای دیدن دستبند نزدیک شد و نادیا جعبه جواهر را همانطور که بسته بود به او داد و با این حرکتش نشان داد که حتی نمیخواهد آن را ببیند. دستبند را بیرون آوردند و دست به دست گشت همه با سکوت و حتی بعضی با قیافه مسخر آمیز به آن نگاه میکردند تنها مادر با صدای نرمی اظهار داشت که دستمن بسیار زیبا است. پاول پاولویچ میخواست زمین دهن باز کند و او را فرو ببرد. ولچونینوف به کمکش آمد. ناگهان با گرمی و صدای بلند به صحبت پرداخت. در اطراف اولین فکری که به نظرش آمد حرف زد و هنوز پنج ای نگذشته بود که توجه همه ی حضار را به خود جلب کرد. به طرز قابل تحسینی از هنر حرف زدن برخورد یعنی هنری که می توانست به وسیلش خود را کاملا صادق و سلیم جلوه دهد و در عین حال با رفتار خود نشان بدهد که شنوندگانش او را همچون اشخاصی ساده و مثل خود محسوب می دارند. وقتی لازم می او میدانست که چگونه از رفتار مردم خوشحال و خوشبخت طبیعی تقلید کند می با مهارت لطیفهی گیرا کنایهی روحدار و یا مضمونی خنددار را مثل اینکه تصادفی پیش آمده است؟ در ضمن صحبت خود بیاورد بی این که نشان بدهد خودش ملتفت آن شده است هرچند که کلمه بجا یا آن لطیفه و حتی سر, تا سر صحبتش از مدتها پیش آماده و از بر شده بود و شاید بارها به کار رفته بود اما در این روز خلق و خویش به هنرش کمک می‌کرد کاملا آمادگی داشت چیزی او را میکشانید. اطمینان کامل و مسلم داشت که تا چند دقیقه دیگر همه این چشم ها به طرف او متوجه خواهد شد همه این اشخاص فقط به او گوش خواهند داد با او حرف خواهند زد و فقط از آنچه که او میگوید خواهند خندید راستی هم خیلی زود اینجا و آنجا صدای خنده ها بلند شد کم کم همه در صحبت شرکت کردند دیگر سه یا چهار صدایی یک دفعه با هم به صحبت شروع کرده بودند به گوش می‌رسید صورت خسته و گرفته خانم زاخریبینین از شادی تقریبا درخشان شده بود همین حال را کاترینا فداسیونا که او را نگاه می کرد و شیفت وار به او گوش می داد داشت نادیا با گوشه چشم او می نگریست. آشکار بود که نادیا تحت تاثیر او واقع شده بود و این مطلب ولچانی را بیشتر تحریک می کرد ماریا همان که بد جنس بود در ضمن صحبت توانست به جا تیر تن آمیز و زننده‌ای بپراند که درست به قلب پاول پاولویچ نشست. از خودش درآورده بود و تأکید کرد که شب گذشته پاول پاولویچ از ولچانینف به عنوان رفیق زمان کودکی‌اش یاد کرده بود و با لحنی صریحاً کنایه آمیز اشاره به هفت سالی کرد که او از سن خود کم کرده بود. پاول پاولویچ کاملا شرمسار شده بود. مسلما از توانایی های رفیقش با خبر بود و در ابتدا حتی از موفقیتش خوشحال شده بود. اول نیشخن می زد و در مکالمه شرکت می جست. اما آهسته آهسته بی این که بفهمد برای چه دل مشغول شد و حتی غمگین گردید. و این موضوع به وضوح از صورت آشفتش خوانده می شد. زاخل بینین پیر در حالی که بلند می تا به اتاق خود برود با شادی اظهار کرد. <تص> شما مهمانی هستید که حتی نباید به شما تعارف کرد. هرچند که امروز عید است، من باید چند کاغذ بسیار مهم را بررسی کنم و تصورش را بکنید که من خیال می کردم شما زننده ترین جوان ها هستید. <تصفح> چقدر آدم اشتباه می کنند. در سالان پیانایی بود. ورچنینوف پرسید کی موزیک می و ناگهان به طرف نادیا برگشت. گمان می کنم که شما آواز می خانی. نادیا ناگهان کلامش را برید کی به شما گفته است؟ پاول پاولوی چند لحظه پیش گفت: درست نیست من فقط برای سرگرمی آواز میخوانم. حتی صدا هم ندارم من هم صدا ندارم و معازه آواز میخوانم. خب آیا برای ما آواز خواهید خواند؟ بسیار خب من هم خواهم خواند. اما نه حالا بعد از نهار. من از موسیقی بیزارم. از تمام پیانوها سیر شدم. در منزل ما از صبح تا شام همه میزنند و می‌خوانند. تنها کاتیا همه را کفایت می کند ولچانینو فوراً این کلمه را دستاویز قرار داد. فهمید که کاترینا فدوسیونا تنها کسی است که دارد با جدیت موسیقی فرا میگیرد. فوراً از او خواهش کرد که بنوازد. آشکار بود از اینکه او از کاتیا درخواست کرده است همه خوشحال ما مادر هم از شادی قرمز شد. کاتیا لبخندی زد و بولان شد و به طرف پیانو رفت. اما ناگهان چیزی خود او را هم متعجب کرد او به این بزرگی با این قدرت او که اکنون 24 سال داشت الان مثل دختر بچه قرمز شده بود و از این قرمز شدنش بسیار شرمنده شد هنگامی که برای نواختن نشست همه این تأثیرات از صورتش خوانده می شد. با دقت اما بی حالت قطعی از هایدن را نواخت خجالت میکشید وقتی تمام شد ولچانینوف با گرمی از او تمجید کرد. نه نواختنش را بلکه هایدن را و مخصوصا این قطعه کوچکی را که او نواخته بود این کار به نادیا بسیار لذت بخشید و با چنان شناسی پرشور و خوشبختی بی اندازهی به تمجیدهایی که نه از او بلکه از موسیقیدان میشد گوش میداد که ولچانینوف بی اراده با مهر و محبت و دقت بیشتری او را نگاه کرد نگاهش می گفت ای اما راستی تو زیبا و ملوسی همه مخصوصاً کاترینا فدسیوونا این مطلب را فهمیدند. ولشانینوف به طرف در شیشه‌ای بالکن برگشت و ناگهان به همه خطاب کرد و گفت: چه باغ زیبایی دارید. برویم توی باغ. میخواهید؟ برویم. برویم. مثل اینکه به آرزوی اصلی خود رسیدند، همه فریادهای مسرت‌بخش و نافذشان در سالن پیچید. تا هنگام نهار در باغ گردش کرد. خانم زاخلیبینین با وجود این که از مدتی پیش میخواست استراحت کند نتوانست مقاومت کند و او هم بیرون آمد. اما عاقلانه روی مهتابی نشست و فوراً به خواب رفت. از ویلاهای همسایه هم دو یا سه مرد جوان آمدند و به آنها پیوستند. یکی دانشجو بود. دیگری هنوز دبیرستان میرفت. فورا فوراً هر کدام طرف دختر خانم های خود رفتند. آشکار بود که آنها برای این دختر آمده بودند. مرد جوان سومی که در هم همژولده بود و عینک آبی بزرگ و حالتی ابوس داشت با نادیا و مارییکی تیشننا تن به نجوا پرداخت با سماجت صورت ولچینوف را ورانداز می کرد و بهجا میدید که او را سخت تغییر می کند. چند دختر جوان پیشنهاد کردند که بی معاطلی بازی ها را شروع کنند ولچینوف از آنها پرسید چه بازی میکنند؟ آنها جواب دادند که بازی های بیشماری میدانند اما امروز زربال بازی می همه جز یک نفر مینشینند و آن یک نفر برای مدتی دور می شود آنها که نشستند زربال مسلی انتخاب می کنند مثلا آن که آهسته می با اطمینان می روید. و وقتی آن را که دور شده بود صدا کردند هر کس به نوبه خودش باید جمله ای را که حاضر کرده است ادا کند اولین نفر باید فقط جمله ای را که کلمه آنکه در آن باشد بر زبان راند دومی کلمه آهسته. و همینطور تا آخر و آن نفر باید این کلمات را بگیرد و به کمک آنها زربال مسئلی را پیدا کنند. ولچانی گفت بازی بسیار سرگم کننده است. دو یا سه صدا با هم جواب دادند آه نه بسیار کسر کننده است. نادیا ناگه هم به ولچانی خطاب کرد و گفت تئاتر هم بازی می کنیم. این درخت بزرگ را که از نیم کتی شده است میبینید آنجا پشت صحنه نمایش است و در آنجا بازیکنندگان خود را آماده می کنند شاه ملکه شاهزاده خانم برده جوان و هرچه که بخواهند میشوند هرکس هر وقت میلش کشید بیرون می آید و هرچه در فکرش می گذارد بر زبان جاری می کند گاهی این کار چیز خوشمزه ای می شود. برای بار دیگر ولچانینوف تصدیق کرد بازی بسیار خوبی است نادیا گفت: آه نه بسیار کسالت آور است. در آغاز بسیار سرگرم کننده است اما هر بار احمقانه می شود، زیرا هیچکس نمیداند نمی داند چه کار بکند. اما با وجود شما شاید این بازی جالب تر شود. پاول پاولویچ فقط از خودش لاف زده است. ما شما را هم که رفیق او هستید مثل او تصور می کردیم. به دلیلی من بسیار خوشحالم که شما آمده اید. با وقار و ترزی معنی دار به ولچنینف نگاه کرد و فوراً به ماریانیکیتیشنا نزدیک شد. یکی از دوستان کوچک آنها که ولچانینوف بسیار کم به او متوجه شده بود و با او تاکنون صحبت نکرده بود با طرزی محرمانه در گوش ولچانینوف گفت امروز سربال مسئل بازی خواهند کرد امروز پاول پاولویج را دست خواهیم انداخت و شما هم با ما خواهید یک دوست کوچک دیگر آنها که دخترکی بود با موهای هنایی و روی پوستش لکه داشت و صورتش که به علت دویدن و گرما قرمز شده بود و راستی حالت بسیار خندهآوری به او داده بود و ولچانینوف تا به حال او را ندیده بود و خدا میداند از کجا یک دفعه پیدا شد دوستانه به او گفت آه چقدر آمدن شما پسندیده و بجاست ما اینجا بی اندازه ما سر می رفت اضطراب پاول پاولویچ دائما زیاد میشد در پایان گردش ولچانینف و نادیا بسیار دوست شدند نادیا دیگر ولچانینف را مثل چند ساعت پیش از گوشه چشم برانداز نمیکرد حتی میلش کشید در جزئیات او دقیق شود میخندید میجهید فریادهای گوشخراش میکشید و حتی دوبار دست ولچانینوف را گرفت بسیار خوشوقت بود و همانطور نسبت به پاول پاولویچ هیچ توجه نداشت انگار حتی او را نمیبیند ولچانینوف خیلی زود مرتفت شد که دستی برای پاول پاولویچ فراهم می شود. نادیا و یک دسته از دخترهای جوان ولچانینوف را به کناری کشیدند و چند دوست کوچک به بحانه های مختلف پاول پاولویچ را به طرف دیگری بردند. اما او از دستانها فرار کرد با تمام به طرف ولچانینوف و نادیا دوید و ناگهان سر تاس خود را میان آنها برد و با اشتیاق تمام به سخنان آنها گوش فراداد. در اواخر گردش دیگر هیچ زحمتی به خودش نمیداد. سادگی حرکاتش گاهی شگفت آور بود. او اکنون میدانست که ولچانینوف برای او نیامد است و به نادیا بیشتر علاقه مند است، اما قیافه نادیا همیشه همانطور دلپذیر و آرام بود. به نظر می آمد کاترینا تنها از همین که خودش را از آنها می بیند و به آنچه که تازه وارد می گوید گوش می دهد، و خوشبخت است. خودش هم بیچار استعداد نداشت که با مهارت در مکالمه شرکت کند ولچانینوف ناگهان آهسته به نادیا گفت چقدر خواهر شما کاترینا فداسیفنا دلفریب است نادیا با خوشحالی گفت کاتیا آیا میتوان روحی زیباتر از روح او داشت؟ او فرشته ماست من او را میبرستم ساعت پنج نهار خورد پیدا بود که نهاری عادی نیست و مخصوصاً به افتخار میهمانان تازه تهیه شده است. دو یا سه خوراک اضافی بسیار لذیذ سفره بود. یکی از آنها به اندازه عجیب بود که هیچ کس نتوانست بگوید چیست. علاوه بر شرابهای معمولی محققا برای مهمان تازه یک بطری توکای هم باز کردند. در پایان غذا معلوم نبود برای چه شامپانی هم آوردند. زاخل بینین پیر؟ که یک پیاله کوچک بیشتر نوشیده بود بهترین حالت روحی را داشت و آماده بود برای آنچه که ولچانینوف میگوید خنده را سر بدهد پاول پاولویچ بالاخره نتوانست خود را نگاه دارد حس همچشمی وادارش کرد که او هم تصمیم بگیرد مضمون کوچکی بگوید ناگهان از انتهای میز جایی که او کنار خانم زاخره بینین نشسته بود خنده های پرسدا و دخترهای جوان دخترهای شد. و دختر کوچک زاخلیبیین یک صدا فریاد کشیدند؟ پاپا پاپا پاول پاولویچ هم مزمون میگوید. میگوید ما دختر خانم های شگفت آوری هستیم زخره بینین پیر که از پیش به مزمونی که مطرح شده بود میخندید به عنوان پشتیبان به طرف پاول پاولویچ برگشت و با لحنی آرام گفت: «آه، او هم مضمون میگوید. بسیار خوب. چه گفته است؟ او میگوید گوید که ما دختر خانم های شگفت آوری هستیم. بله و بعد زاخل بینین پیر همانطور نمی فهمید و منتظر بود و با سادگی می خندید. آه پا, پا پا پس شما نمی فهمید دختر خانم ها شگفت آور دختر خانم مثل شگفت آور تلفظ می شود دختر خانم های شگفت آور پیر مرد متحیر با صدای ضعیفی گفت آه, آه، مم، بار دیگر مضمون بهتری خواهد آورد و به خنده افتاد. ماریا تیشنا با لحنی مسخر آمیز گفت همه هنرها را نمیتوان داشت پاول پاولویچ و از روی سندلیش پرید. آخ خدای من استخان ماهی توی گلویش گیر کرده است. همه با سر و صدا به جنب و جوش آمدند و این درست همان چیزی بود که ماریا تیشنا میخواست. پابل پاولویچ برای اینکه خجلتش را پنهان کند فقط یک جرع آب را یک حسر کشیده بود اما ماریانی کی تیشنا چپ و راست قسم یاد می کرد که این استخان ماهی بود که او دیده بود و ممکن است به مرگ منجر گردد یکی فریاد کشید با دست به پشتش بزنید زاخ با صدای بلند به این کار رضایت داد و گفت در واقع بهترین کارها همین است خیرندیشان به یاری برخواستند. ماریا دخترک مو که او هم به شام دعوت داشت و بالاخره خود خانم منزل که بسیار دستپاچه شده بود بلند شدند. همه میخواستند به پشت پاول پاولویچ بزنند. او ناگهان میز را ترک کرد و سعی میکرد خود را نجات دهد. یک دقیقه وقت صرف کرد تا آنها را قانع کند که او فقط یک جره آب را یک و سر کشیده است و الان فورا صرف قطع خواهد شد. تازه فهمیدن که این یکی از شوخیهای ماریا نیکیتیش نبود تو راستی خیلی موزی هستی خانم زاخلیبینین سعی کرد این جمله را با قیافه جدی به او بگوید اما نتوانست ادامه بدهد و به خنده افتاد در صورتی که به ندرت اتفاق می افتاد به و این خنده هم تأثیری بخشید بعد از نهار روی محتابی قهوه نوشیدند زاخلیبینین پیر که با لذت آشکاری به باغش مینگریست، در برابر زیبایی های طبیعت صادقانه از خود بی خود شده بود چقدر هوا خوب است اما باران هم لازم دارد بسیار خوب من می استراحت کنم خوب تفریح کنید خدا نگهدار شما و دستی به شانه پاول پاولویچ زد و گفت و تو هم تفریح کن <تصفح> <تصفح> آنها دوباره پایین توی باغ رفتند پاول پاولویچ ناگهان با شتاب به طرف ولچانینوف آمد و آستینش را گرفت و با بی آهسته گفت یک دقیقه داخل جاده کوچک دور ای شدند پاول پاولویچ آهسته با خشمی وار گفت آه نه از شما پوزش می طرفم. اینجا نه نه این بار اجازه نخواهم داد خشمگلویش را گرفته بود ولچانینوف چشمانش را درشت کرد و گفت چه چیز را چه شده؟ پاول پاولویچ بی اینکه که بگوید او را نگاه میکرد لبهایش میرزیدند و با حیجان شدید تبسم میکرد کجایید؟ کجایید؟ همه چیز آماده است؟ فریادهای بیتابانه دخترهای جوان که آنها را صدا میکردند شنیده شد بلچانینوف شانه ها را بالا انداخت و دوباره به جمع پیوست بلافاصله پاول پاولویچ دنبال او دوید ماریا نیکی گفت شرط میبندم که از شما دستمال میخواست. دفعه پیش هم آن را فراموش کرده بود. یکی از خواهرهای زاخلیبینین افزود. همیشه آن را فراموش میکند. همه با هم فریاد کشیدند. دستمالش را فراموش کرده است. پاول پاولویچ باز یک بار دیگر دستمالش را فراموش کرده است. مامان پاول پاولویچ باز زکام شده است. خانم زاخلیبینین با بیغیدی گفت. آخر چرا گفتید؟ چقدر شماها ها خورده بین هستید؟ پاول پاولویچ با زکام که نباید شوخی کرد. الان دستمال برای تا میآورم و در حالی که دور می شد افزود. اما برای چه همیشه زکام هستید؟ از این که برای برگشتن بحانه ای به دست آورده خوشحال بوده. پاول پاولویچ فریاد کشید. من دوتا دستمال دارم و زکام هم نیستم. اما خانم زاخربینین آن را نشنید و چند دقیقه بعد هنگامی که او دنبال دیگران می و سعی می کرد هرچه بیشتر خود را در کنار نادیا و ولچانی نف نگاه دارد خدمتکاری نفس نفس خود را به آنها رسانید و دستمالی به او داد. بازی کنیم، بازی کنیم، زربال مسئل بازی کنیم. از هر طرف فریاد می‌کشیدند، خدا می‌داند چه مقصودی از این بازی داشتند. جای مناسبی انتخاب کردند و روی نیمکت نشستند. ابتدا نوبت ماریانی تیشنا بود که حدس بزند. از او درخواست کردند که تا میتواند دور شود و گوش فران ندهد. زربال مسئلی که باید آن را حدس بزند این بود. تفعال وحشتناک است اما خدا رحیم است. کلمات را بین بازی کنندگان پخش کردند. بعد نوبت مرد جوانی که موهای آشفته، و عینک آبی داشت رسید. درباره او باز هم احتیاط بیشتری کردند و او را نزدیک آلاچیق بردند. جایی که بایستی بییستد و صورت خود را به طرف دیوار باغ بگرداند. جوان در هم آشفته وظیفه‌اش را با حالتی تحقیرآمیز انجام میداد و به نظر میآمد که شرمنده شده است. وقتی که او را صدا کردند، هیچ نتوانست حدس بزند. بازیکنندگان را با دقت ورانداز کرد. هر جمله را پیش خود تکرار می مدتی فکر کرد بسیار درهم شده بود اما هیچ چیز نتوانست بیابد او را شرمنده کردند. ضرب المثل این بود دعا و نماز برای خدا و خدمتگذاری برای تزار هرگز به هدر نمیرود سر جایش نشست و با تغییر اوقات تلخی گفت این ضرب المثله پستی است این جمله شنیده شد آه چه ای. ولیچانی هم به نوبه خودش دور شد. او را در جایی دورتر از آن دو دیگر مخفی کردند، اما او هم نتوانست حدس بزند. این بار صداهای مختلف بیشتری شنیده شد. آه چه حیف شد، نادیا گفت. بسیار خوب، اکنون نوبت من است که حدس بزنم. دیگران که ناگهان به هیجان آمده بودند، فریاد کشیدند؟ نه، اکنون نوبت پاول پاولویچ است، پاول پاولویچ را تا پای دیوار بردند و او در آن گوشه روبروی دیوار زیر نظر دخترک مو ایستاد پاول پاولویچ که در این مدت جرأتش را دوباره به دست آورده بود و خوی خوش خود را باز یافته بود آماده بود که با دقت و درستی وزیفهش را انجام دهد. مثل میخ بی حرکتی بود و به دیوار نگاه میکرد و جرأت نداشت برگردد. در بیست قدمی او، اما بسیار نزدیکتر به دخترهای جوان دیگر پشت انبوه درختان دخترک موخورمایی پاسبانی میکرد و با استراب بسیار با دستهایش اشاره میکرد عصبانیت عمومی آشکارا نشان میداد که چیزی دارد آماده میشود دخترها با بیصبری زیادی انتظارش را میکشیدند ناگهان از پشت انبوه درختان دخترک موخورمایی دستش را تکاند. فورا همگی با تمام قوا از جا پریدند و شادمان شدند همین که ورچانینوف را دیدند که سر جایش ایستاده است ده صدای بسیار مسترب با هم شنیده شد بدوید پس چرا نمی دوید؟ به دنبال دیگران و پرسید چه خبر است؟ چه شده است؟ ایس فریاد نکشید او میماند و به دیوار نگاه میکند ما فرار میکنیم و ناستیا هم فرار کرد دخترک مو ناستیا ناستیا با تمام قوامی دوید. مثل اینکه اتفاقی افتاده بود. خدا می چه شده بود و با دست اشاره می کرد. همگی بالاخره به پشت استخر که در انتهای باغ بود رسیدند. وقتی که ولچانینوف به دخترهای جوان پیوست، دید که کاترینا فدوسیونا به سختی با آنها مشاجره می کند. مخصوصاً با نادیا و ماریانیکیتیشنا. نادیا خواهرش را می و می بوسید عزیزم می نشو بسیار خوب. به مامان چیزی نخواهم گفت. اما من میروم. زیرا این کار بسیار بدیست، است. آن بیچاره کنار دیوار چه بکند؟ کاتیار راستی دلش به حال پاول پاولویچ میسوخت و از آنها جدا شد. اما دیگران همانطور بی‌رحم و سنگ دل بودند. آنها جدا از نوف درخواست کردند، انگار که پاول پاولویچ برگشت، انگار که چیزی نشده است به او هیچ توجهی نکند. دخترک موخرمایی شادمان فریاد کشید. حالا گوریلکی خواهیم کرد پاول پاولویچ یک ربع ساعت بعد به آنها پیوست حتما دو سالس این مدت را بی حرکت روبروی دیوار ایستاده بود بازی گرم شده بود خوب پیش رفت می کرد. آنها سرگرم بودند و فریاد می کشیدند. پاول پاولویچ که از غضب دیوانه شده بود یک راست به طرف ولچانی نفت دوید و دوباره آستینش را گرفت یک دقیقه آخ خدا من باز با این دقایقش چه میخواهد همه فریاد کشیدند. بیشک باز دستمال می دندانهای پاول پاولویچ به هم میخورد. بسیار خوب. این بار شمایید. اکنون شمایید. شما سبب شده اید. ولچانینوف کلامش را برید و با آرامش به او نصیحت کرد که بیشتر خوشحال باشد و الا بی این که محلتش بدهند او را از خواهند کرد. درست به همین علت شما را ازیت می کنند شما خشمگین میشوید در صورتی که دیگران تفریح می کنند ولچانینوف بسیار متعجب شد زیرا این گفتار و نصیحت شدیداً در پاول پاولویچ موثر افتاد فورا تسکین یافت به جنب پیوست مثل اینکه خودش را مقصر می دید و با فرمان برداری در بازی شرکت جاست مدتی او را ازیت نکردند و با او مثل دیگران بازی کردند نیم ساعت بعد تقریباً شادمانی خود را دوباره یافته بود او همیشه ترجیح میداد که آن دخترک موخرمایی مکار را یا یکی از خواهرهای زاخلبینین را شریک بازی خود قرار دهد. هرچند که پاول پاولویچ دائما در اطراف نادیا میگشت و از او دور نمیشد، شد، نوف دریافت که حتی یک بار هم جرأت نکرد با او هم صحبت گردد و از این موضوع بسیار متعجب شد. به نظر می آمد که پاول پاولویچ طبیعی میداند که از نادیا خفت ببیند و خاری بکشد. اما در آخر باز بلایی به سرشان